دوستان، در این دوره اپامات، ما مطالب زیادی در مورد پسنداز و نقشه در مورد آینده و سرمایه گذاری آقلا عیسی ایسا، مطالب زیادی در مورد پول و نقشه برای آینده داره و این چیزی نیست که فرهنگ به ما توصیه بکنه. به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. در سرتاسر سر موعظه سرکوی حساب شاگردانش حلی میده که چطور بخشی از راه حل اون برای مشکلات این دنیا باشن در درس امروز معلممون به ما کمک خواهد کرد تا تعالیم ایسا رو در مورد ارزش ها بیشتر درک کنیم بیایید حالا به معلممون گوش کنیم گنج های خود را بر روی زمین جایی که بید و زنگ به آن زیان میرساند و دزدان نقب زده آن را میدزدند ذخیره نکنید بلکه گنج های خود را در عالم بالا یعنی در جایی که بید و زنگ به آن آسیبی نمی‌رسانند و دزدان نقب نمی‌زنند و آن را نمی‌دزدند ذخیره کنید زیرا هر جا گنج تو است دل تو نیز در آنجا خواهد بود این جایی که نیمه دوم شش شروع میشه باز هم میخوام تکرار کنم که ما معزه سر کوه رو آیه به آیه از متا 5 6 و 7 مطالعه میکنیم در متا پنج چالش این بود که به درون نگاه کنید و رفتارهای زیبایی رو ملاحظه کنید که در قلب شاگرد حقیقی عیسی مسیح شکل میگیره و سپس بعد از اینکه نخستین آیات باب پنج ما رو به چالش کشیده که اونطور به درون نگاه کنیم بقیه اون باب طولانی به ما گفته که حالا به اطراف نگاه کنیم و این رفتارها رو در همه روابطمون به کار بگیریم وقتی عیسی سخنان خودش رو در مورد نگاه کردن به درون و نگاه کردن به اطراف به پایان میبره و میگه که باید در این نگاه ها چه چیزی رو بفهمیم بعد از اون ما آماده وارد شدن به باب شش شدیم اون با گفتن این شروع میشه حالا به بالا نگاه کنید چون شما هرگز اون رفتارها رو در درون پیدا نخواهید کرد شما هرگز روابطی رو که انتظار میره داشته باشید نخواهید داشت مگر اینکه به بالا نگاه کنید و فیض خدا رو دریافت کنید. نیمه اول متاشش سه انزبات روحانی را رو برای ما ذکر کرد که به ما تعلیم و اصول نگاه به بالا رو میدادند. خداوند ما انزبات هایی به ما داده که عبارتند از انزبات ایسار، انزبات دعا و انزبات روزه. حالا در نیمه دوم متاشش عیسی درباره ارزش ها به ما تعلیم میده، ده. ارزش هایی که در هنگام نگاه به بالا دارید. وقتی به بالا نگاه می کنید و بعد از بالای کوه پایین می و در این انضباط روحانی نگاه به بالا باقی میمونید و اون رو نه تنها در روابطتون با مردم بلکه در مسائل این دنیا هم به کار می گیرید به چه چیزی پی میبرید؟ شما به ارزش های روحانی پی می برید، ارزش هایی که توسط شخصی که به بالا نگاه میکنه حفظ می شند. در واقع تعالیم مطاباب 6 آیات 19 تا 24 هستند. وقتی عیسی وارد این تعالیم درباره ارزش‌ها میشه، پاراگراف اول به ما میگه که ارزش‌های ما نباید تماما در روی زمین باشند. اونجا که موریانه و زنگ و بید اونها رو از بین میبرند و مورد دست دستبرد دزدان قرار میگیرند. به عبارت دیگه، ارزش‌های ما نباید بر مبنای چیزهای فانی باشند. در غیر این صورت از دست ما خواهند رفت. ما باید گنجینه‌های خودمان را در آسمان بیاندوزیم، جایی که موریانه و زنگ اون رو نابود نمی کنند. جایی که هیچ چیز نابود نمیشه و گنجینه ای که در اونجا داریم هرگز نمی تونه از ما رو بوده بشه من معتقدم عیسی با دادن این تعلیم بزرگ به ما میگه گه که امکان داره که ارزشهای های زمینی داشته باشیم و این امکان هم هست که ارزشهای های آسمانی داشته باشیم او به ما نصیحت می کنه که ارزش آسمانی داشته باشیم، نه به خاطر اینکه اون یک فرمان مذهبی هست که او بنیان گذاشته، بلکه به این دلیل که او ما رو دوست داره، او نمیخواد که همه ارزش ما در چیزهایی باشند که میتونند از ما دزدیده بشن و یا چیزهایی که میتونند از بین برند، در رابطه با اون تعالیم ابتدایی درباره ارزش‌ها ارزش ها در آیه 21 او یکی از بزرگترین اظهاراتش رو به ما میده. او میگه زیرا هر جا گنج تو است دل تو نیز در آنجا خواهد بود. اینجا در این متن آغازین نه تنها این هست که گنجینه شما کجاست بلکه همینطور اینه که قلب شما کجاست. هر جا که های شما باشه، هر جا که گنجینه شما باشه، قلب شما هم آنجا خواهد بود. به عنوان یک شاگرد عیسی مسیح با نگاه به درونتون و نگاهتون به اطراف و نگاهتون به بالا، قلب شما باید کجا باشه شما نباید قلبتون رو به چیزهایی بدید که فناپذیرند چیزهایی که میتونند از شما دزدیده بشن چیزهای مادی سرانجام نابود خواهند شد اینجا تعلیم خارق ای درباره ارزش ها هست اینجا یک راهنمای بزرگ برای ارزش های ما هست هر جا که ارزش های شما هست قلب شما هم آنجا خواهد بود این حقیقتی بزرگ هست و وقتی عیسی شروع میکنه به دادن تعالیم درباره ارزش‌های روحانی او به طور مستقیم شروع می‌کنه ببینید کاری که او می‌کنه به چالش کشیدن ما با این سوال هست ارزش‌های شما کجاست و قلب شما کجاست من معتقدم که اگر عیسی امروز اینجا بود و می‌خواست درباره ارزش‌ها تعلیم بده و یک جلسه پرسش و پاسخ میگذاشت و شما از او می‌پرسیدید از کجا بدونم ارزش‌های من چی هستند معتقدم که عیسی به همون اندازه که در این متن کاربردی صحبت کرده به شما نیز جوابی کاربردی میداد. او اینطور میگفت: بیایید چند ساعت بشینیم و بررسی کنیم که شما طی 5 سال گذشته پولتون رو برای چه چیزهایی خرج کردید. یا می میگفت های قدیمی 5 سال گذشتهتون رو بیارید و به من نشون بدید در 5 سال گذشته وقتتون رو صرف چه چیزی کردید. به من نشون بدید که در 5 سال گذشته پولتونو برای چه چیزهایی خرج کردید و من به شما نشون خواهم داد که ارزشهای شما چیه؟ من به شما نشون خواهم داد که قلب شما کجاست؟ بعد از اون میتونیم راجع به این صحبت کنیم که ارزشهای شما کجا باید باشه و قلب شما کجا باید باشه؟ در این نخستین پاراگراف به نظر میرسه با مطرح کردن این سؤال او به ما درباره باره ارزشها تعلیم میده تمام طول روز با وقتتون با انرژیتون و با پولتون چیکار میکنید؟ جواب این سوال نشان خواهد داد که ارزشهای شما چی هستند، ارزشهای شما و فعالیت های شما که نشاندهنده ارزشهای شما هستند، نباید تماما مربوط به چیزهای زمینی باشند که فانی هستند، چیزهایی که سرانجام از شما گرفته خواهند شد. کفن هیچ جیبی نداره و ما گنجینه های خودمون رو با خودمون نخواهیم برد. پس سرانجام هر آنچه که داریم از ما گرفته خواهد شد. چرا تمام قلب شما، چرا تمام ارزش‌های شما مربوط به چیزهایی باشه که میدونید سرانجام از شما گرفته خواهد شد و به کس دیگری داده خواهد شد؟ چرا ارزش‌های شما فقط بر مبنای چیزهایی باشه که فانی هستند، چیزهایی که ابدی نیستند، چون اونها روحانی نیستند؟ در پاراگراف بعدی عیسی سؤال دیگری مطرح میکنه اینجا تعلیم بزرگ دیگری از عیسی هست که در آیات بیست و دو و بیست او میگه چراغ بدن چشم است. اگر چشم تو سالم باشد تمام وجودت روشن است. اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر آن نوری که در توس ظلمت باشد آن چه ظلمت عظیمی خواهد بود. در کتاب مقدس معمولا چشم نماد ذهن هست. بنابراین اگر شما چشم را اینجا به عنوان ذهن ببینید طرز فکر یا دیدگاه، اون موقع چیزی که عیسی میگه اینه که در این زندگی شما میتونید بدنی داشته باشید پر از نور یا بدنی داشته باشید پر از تاریکی. به عبارت دیگه شما میتونید زندگی بی نهایت شاد داشته باشید یا زندگی شما میتونه بی نهایت تاریک و بی نهایت کسل کننده باشه. تفاوتش بستگی به این یک چیز داره که شما چیزها رو چطور میبینید. دیدگاه شما در زندگی چی هست؟ یا طرز فکر شما چی هست؟ و دوباره باید بپرسم ارزش‌های شما چیه؟ او اینجا حقیقت بزرگ دیگری رو در مورد زندگی به ما میگه و اون اینه که اگر دیدگاه شما چیزی هست که باید باشه، اگر شما چیزها رو اونطور طور که باید ببینید می‌بینید، میتونید زندگی شادی داشته باشید. اما اگر روشی که به چیزها نگاه می‌کنید معیوب باشه، زندگی شما میتونه پر از تاریکی باشه وقتی دیدگاه شما غلط و زندگی شما تاریکه این تاریکی چه تاریکی عظیمی میتونه باشه قمگیم بودن استعداد قصه خوردن در کسانی که دیدگاه درستی در زندگی ندارن قابل وصف نیست این حقیقت بزرگ زندگیه مردم هر کاری دلشون میخواد میکنن و زمان و انرژی و پولشون رو بر اساس دیدگاهشون و طرز فکرشون خرج میکنن این حقیقت بزرگی درباره باره ارزش هست. این تعبیر در مورد ایمانداران هم صدق می کنه. بسیاری از ایمانداران مشکلی دارند. یک شبان ممکنه بیش از دیگران با این مشکل مواجه بشه. من به این مشکل شیزوفرنی روحانی میگم. ایمانداران چشم واحد ندارن. اونها به چیزها فقط یک طور نگاه نمی کنن. به جای اون دوبینی روحانی دارند. سالها پیش یک آهنگ معروف بود که می‌گفت بر چیزهای مثبت تکیه کن و چیزهای منفی رو حذف کن و با آقای ولرم قاطی نشو کتاب مقدس در جاهای بسیاری و بر بسیاری به ما میگه که آقای ولرم مرد بسیار غمگینیه در مکاشفه باب سه مسیح قیام کرده به کلیسای لاودیکیه میگه من از همه اعمال تو آگاه هستم و میدانم که تو نه گرم هستی و نه سرد ای کاش گرم بودی و یا سرد اما چون بین این دو یعنی نه گرم هستی و نه سرد تو را از دهان خود قی خواهم کرد پس یا گرم باش یا سرد این روش دیگری برای گفتن این هست که ما نباید آقای بی تفاوت باشیم نه گرم نه سرد وقتی ایلیا بالای کوه کرمل بود در اول پادشاهان باب هجده او قوم خدا را به چالش کشید بسیاری از آنها بل و اشتاروت رو می پرستیدند. در مقابل انبیاء این خدایان دروغین که مردم پرستش می کردند ایلیا این چالش بزرگ رو به اونها داد اونجا که گفت بگذارید این انبیاء دروغین قربانی خودشان را بر روی یک مذبح بگذارند و من قربانی خودم رو بر روی یک مذبح خواهم گذاشت و در مقابل خدای خودمان دعا خواهیم کرد که به طور العاده آتشی از آسمان نازل کند تا قربانی را بسوزاند حالا بگذار اونها نزد خدایان خود دعا کنند و من نزد خدای خود دعا خواهم کرد و بعد از آن خواهیم دید که خدای چه کسی خدای حقیقی هست اون تجربه بزرگ در کوه کرمل رو به خاطر میارید؟ آیا به اون سوالی که ایلیا در مقابل قوم خدا قرار داد توجه کرده اید؟ زمانی که اون نمایش عظیم واقعیت خدای حقیقی زنده رو اجرا کرد؟ سوال او از اونها؟ از قوم خدا این بود تا کی می میان دو فرقه بلنگید اگر یهوه خداست او را پیروی نمایید و اگر بل است او را پیروی نمایید چیزی که او میگه اینه تا کی می خواهید سر راهی بمونید روزی مرد قدرتمندی واعظ بزرگی معزه عالی در مورد این داستان کرد او معزه خودش رو اینطور به پایان برد اگر یهوه خداست پس او رو بپرستید و اگر بل خداست پس او رو به و به جهنم برید این معزه قدرتمندی بود و من معتقدم این همون چیزی بود که ایلیا بر بالای کوه کرمل می گفت باز هم این همون حقیقته یک شیزوفرنی روحانی نباشید اگر یهوه خداست پس به او متعهد باشید و او رو پیروی کنید اون باید دیدگاه شما باشه اون باید طرز فکر شما باشه یک فکر داشته باشید و مردد نباشید در یعقوب باب یک یعقوب گفته دودل نباشید چون شخص دودل در تمام کارهای خود ناپایدار است ایمان داشته باشید و قلب خودتون رو از دودلی و شک پاک کنید پاک کردن اینجا به معنی تمیز کردن قلبتون نیست بلکه برگشتن از دودلی و ایمان داشتن هست این چیزی که منظور یعقوب هست اینجا یک حقیقت عظیمی وجود داره و اون حقیقت این سوال رو مطرح میکنه. رفتارهای شما چی هستند؟ اینجا باز هم به موعظه سر کوه برمیگردیم و میپرسیم رفتارهای شما چی هستند؟ چیزها رو چطور میبینید؟ تمام روز رو به چی فکر می کنید؟ جواب این سوال فهرستی از ارزش‌هایتان را به شما خواهد داد. بعد وقتی به آیه بعد می‌رید در آیه 24 عیسی سوال دیگری درباره ارزش‌ها مطرح میکنه. او میفرماید هیچ کس نمی‌تواند بنده ی دو ارباب باشد. چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال. این سوالی را مطرح می کنه. چه کسی و یا چه چیزی را در تمام طول روز خدمت می کنید؟ یا به چه چیزی وفادار هستید؟ این با متن قبلی مربوط میشه با آیات 22 و 23 اونجایی که این حقیقت در مقابل ما قرار می گیره که اگر یک فکر دارید با پیروی از عیسی شاد خواهید بود. اما اگر می خواهید بهترین های هر دو دنیا رو داشته باشید، هم تمام چیزهای روی زمین رو و هم آسمان رو اگر باور می کنید و شک می کنید، اگر شیزوفرنی روحانی هستید، شما برای چیزی تلاش می کنید که کاملا غیر ممکن هست. ایسا از مردم وفاداری کامل میخواست. سر سوزنی کمتر از وفاداری کامل منتهی به قمهای فراوان خواهد شد. یادم از یک استاد روانشناسی که ایماندار نبود و منطق تجزیه رو درس میداد، شنیدم که می همه ما چیزهایی در ذهنمون داریم که با هم در تضاد هستن. یکی از آنها حقیقت داره و دیگری نمی تونه حقیقت داشته باشه. اما ما به این واقعیت اینگونه فکر نمیکنیم. بلکه سعی میکنیم به هر دو باور کنیم مثلا اون میگفت بعضی از مردم مذهبی میگویند خداوند شبان من است و من از چیزی نخواهم ترسید اما بعد وقتی اونها زخم معده و سردرد میگیرن و دکترها بیماریشون رو به اونها میگن اونها واقعا وحشت میکنن اونها انواع نگرانیها ها رو دارن بعد او می میگفت چنین آدمهایی چیکار خواهند کرد بذارید بهتون بگم چیکار میکنن او برای تفهیم موضوع از تصویری استفاده می کرد او می چنین افرادی مثل این هست که دیواری در وسط مغزشون ایجاد می کنند و دو قسمت مجزا در ذهنشون می سازند در یکی از این قسمت ها اونها می میگند که باور داریم که خداوند شبانه منه اما وقتی به اون فکر میکن به خودشون اجازه دند که به بیماری هاشون و یا به چیزهایی که باعث ترسشون میشه فکر کنند و یا آنهاها روی صندلی نگرانی میشینند و در حالی که نگران انواع چیزها هستند به خودشون اجازه نمیدن به این واقعیت فکر کنند که قرار بود آنها به این شبان نیکو اعتماد کنند اونها این اندیشه رو در قسمت دیگر ذهنشون نگه میدارن. و بعد می میگفت تمام این افکار متناقض به بانک اطلاعاتی حافظه اونها میره چون که هر کسی یک حافظه عالی داره اونها توانایی این رو دارند که این نوسانات رو به یاد بیارن. اما هر کسی میتونه هر چیزی رو که بهش فکر کرده به یاد بیاره. پس این افراد تمام این افکار زد و نقیز رو در ذهن ناخودآگاهشون و یا بانک اطلاعاتیشون قرار میدن. ذهن ناخودآگاه مثل یک جام میمونه. اون ظرفیت مشخصی داره. وقتی ظرفیت ذهن ناخودآگاه اونها با افکار زد و نقیز پر میشه بعد ذهن ناخودآگاه اونها به ذهن آگاه فریاد میزنه و میگه هی! Hey, بهتره که افکارتو درست کنی و این ما رو به جنون میکشونه او میگه این حتی میتونه به دیوانگی کامل منتهی بشه چیزی که اتفاق میفته اینه که یک طرف از ذهن ناخداگاه غالب میشه و دفعه بعد طرف دیگر غالب میشه بسیاری از اوقات شما میتونید این افراد رو در بیمارستان روانی ملاحظه کنید زمانی به نظر میرسه که بسیار شاد و خرسند هستند و تا آنجا که ممکنه با متانت رفتار میکنن اما بعد ناگهان به نظر میرسه که کسی سویچه طرف دیگر رو روشن میکنه و قسمت دیگه غلبه میکنه اونها به طور وحشتناکی نگران و آشفته میشن. او داشت شیزوفرنی و راههای شروع اون رو توضیح میداد عیسی این اصول رو دو هزار سال پیش تعلیم داده اونجا بر سر کوه او داشت به شاگردان خودش که اونها رو به رسالت خودش دعوت کرده بود و میخواست راه حل او و جواب او برای مشکلات دنیا باشند هشدار میداد او داش میگفت حالا گوش کنید اگر میخواهید منو پیروی کنید بهتره با یک ذهن و با ایمان منو پیروی کنید نه با دودلی و تردید دوبینی روحانی نداشته باشی یک شیزوفرنی روحانی نباشی شما نمیتونید خدا و زنتون رو خدمت کنید نمیتونید خدا و شوهرتون رو خدمت کنید نمیتونید خدا رو با تعهد و وفاداری کامل خدمت کنید و به کس دیگه‌ای تعهد و وفاداری داشته باشید هیچ کس نمیتونه دو ارباب رو خدمت کنه او میتونه یا این رو خدمت کنه و یا اون دیگری رو وقتی به موضوع ارزش ها می سوالی مطرح میشه چه کسی یا چه چیزی رو در تمام طول روز خدمت میکنید میبینید این تعلیم عیسی در مورد ارزش ها چقدر واضح هست؟ است اینجا سوالی مطرح میشه چه کسی یا چه چیزی رو در تمام طول روز خدمت میکنید تمام طول روز به چه چیزی فکر میکنی؟ تمام طول روز چیکار میکنی؟ از چه چیزی یا چه کسی تبعیت میکنی؟ رفتارهای شما چگونهند؟ فعالیت شما چی هستند؟ جواب این سوالات فهرستی از ارزش شما رو نشون میدن. بعد این بخش عالی رو داریم که به واسطه اون او این سوال رو مطرح میکنه. تمام طول روز نگران چی هستی؟ حالا بذارید به نگرانی های شما فکر کنیم. او میگه بنابراین به شما میگویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بیاشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید زیرا زندگی از قضا و بدن از لباس مهمتر است به پرندگان نگاه کنید آنها نمی کارند نه درو میکنند و نه در انبارها ذخیره میکنند ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را میدهد مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست کدام یک از شما میتواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیافزاید. چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسنهای صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو می کنند؟ آنها نه زحمت میکشند و نه ریسند. ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا به تنور ریخته می شود اینطور می آراید آیا شما را؟ ای کم ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم، چه بنوشیم و یا چه بپوشیم تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش میکنند اما پدر آسمانی شما میداند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید آن هم وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشید. نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است. در طول روز ما نگران چه چیزهایی هستیم؟ چقدر نیروی ذهنی خود را با نگرانی از دست میدید؟ این چیزیه که اومی که. بذارید به نگرانی های شما فکر کنیم. اگر شما در مورد چیزهایی که تمام روز نگرانش هستید بحث کنیم، چیزهایی در مورد های شما خواهیم فهمید. بعد از تمرکز کردن روی این چیزها که خیلی نگرانشون هستیم، عیسی تعلیم بزرگی در مورد ها به ما میده. او میگه اول بذارید از های شما صحبت کنی. چیزی که تمام طول روز می‌خواهید چیه؟ اگر شما شاگرد من هستید، باید این رو بخواهید. این چیزیه که باید دنبالش باشید. شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. اون وقت همه این چیزها هم به شما داده خواهد شد. این یعنی حکومت خدا در زندگی شما همانطور که در دعای شاگردان دعا می کنید پادشاهی تو بیاید. یعنی حکومت خدا در قلب شما و چیزی که خدا به طور روزمره به شما نشون میده که درسته بذارید اون اول باشه. به های خودتون مثل یک سیبل تیراندازی نگاه کنید که دایره های مرکز داره و هدف زدن به دایره مرکزی هست به اون دایره مرکزی چشم هدف میگن چه چیزی باید چشم هدف سیبل شما باشه با در نظر گرفتن اون چشم هدف دایره اول چی باید باشه دایره دوم باید چی باشه دایره سوم باید چی باشه عیسی اینجا به ما میگه چشم هدف ما باید پادشاهی خدا و ادالت او باشه و بعد از اون میتونید روی دایره های دوم و سوم و بقیه دایره ها تصمیم بگیرید این تعالیم عیسی درباره ارزش های روحانی هست اگر ما یاد بگیریم خدا رو در اولویت قرار بدیم و او رو مرکز زندگی خودمون قرار بدیم بقیه ارزش ها جای خودشون رو پیدا خواهند کرد او در مورد انضباط های روحانی یک شاگرد به ما تعلیم داده و حالا در نیمه دوم متاشش او ارزش های روحانی یک شاگرد رو به ما تعلیم میده برنامه‌تون رو طوری ترتیب بدید که بتونید جلسه آینده هم با ما همراه باشید که با همدیگه ارزش های پادشاهی خدا رو مطالعه کنید ارزش که پادشاه ما میخواد شاگردانش با اونها پابند باشد عزیزان صادقانه بگین اولویت شما چی هستن؟ وقتی صبح از خواب بیدار میشین یا به هفته و ماه و سال و آینده فکر میکنین معیار ارزشی شما چیه دایما اینجا در دانشکدی کوچک کتاب مقدس اینه که این درس ها به شما کمک کنند تا در ایمان و تعهدتون برزش های عیسی روش رشد کنید و اگر قبلا این کارو نکردین از امروز شروع کنین گنجینه خودتون رو در آسمان پسنداز کنید. دایما اینه که شما متعهدتر باشین و شاگرده وفاداری برای خدا باشین و برای استفاده شدن توسط اون آماده باشین تا برکتی برای خانواده، جامعه و کلیساتون باشین. حالا تا برنامه بعدی امیدواریم خدایی که آرامش و دلگرمی میده روح جسارت خودش رو برای پیروی از عیسی مسیح به شما بده تا اینکه هر چیزی که میگین و انجام میدین برای جلال خدا و پدر خداوندمون ایسایه مسیح باشه.